جلسه 3-2-3 3-2-4 ای جو, ای جو. یعنی به همزه و دو اسم شرط. ایو چند قسمه یکیش اسم شعت است اسم شعر یعنی اسمی سلام علیکم محل اعراب هم دارد و مفید معنای شخصی که توی کلم مجازات ها ازش بحث اسم شخصی نهر ما تدعو بله خول از بعد از بابش علف که این نشون بده که چیه جنب ایان ما اولا ایو از اطماع داریون دا و اگر مزافنه لعیهش بیوبته تنوین عوض از مزافنه لعیه و از همون قسم یعنی اصلش بوده ایه اسمن بعد تنوین افتاده و مضاف افتاده و عوض از مضاف الی چی شده این حالت چی بوده ایه اسم اون مایی که بین این و تدعو هست مای زائد است مفعول تاکید ایه اسمن حد اول صدوبر و او بوی منصوب به ایض حسنوش علامت جزم باشه و خود ایو معربه خود ایو چیه معربه ایو شرطیه به طور مطلق معربه ایو استفهامیه هم به طور مطلق چیه معربه ایوی موصوله چهار شکل داره که گفتیم یک شکلش مبنیست سه شکلش چیه؟ مارم. اون یک شکلی که مبنی اضافه بشه و خدرسلش مخصول بشه پس ایوی شرطی و استفامی یه صد درصد چیه لذا میگه چی؟ اگه ما تدعو تدعو, تدعو و او ایو مفعول تدعور اگر مقدم شده به خاطر این که شهر دارای صداره اگر ما تدعور فرد چون جمله اسمی جزای شرک باقی شده فاهم باید لهو خبر مقدم الاسماعه مفتده اه. این جمله الان محلن چیه؟ مجزون چون جواب شرط جازم باقی شده ها؟ و مختلن به یا ازای پجاییه باشه میشه چه پرمونه نمید فلاحول اسما و الهوسنا الهوسنا افلا اله تخصیبه چون با اله فلا مومده مطابقت کرده انا الهوسنا صفت الاسمای با هم مطابقه هست نگید که الاسما جمع الهوسنا مفرد چطور مطابقه هست میگیم جمع مکسر در رتبه چیه؟ مفرد؟ مهندس جمع مکسر مثل الاسما در رتبه مفرده مانه مستد نزا گفته الاسما اسم شرط. حالا اینجا اسم شرط ما مقبول و به برای تدروش شد و ما استفهامی میاد و اسم استفهام قسم دو بروش شد. اسم استفام مثل چی؟ نه و رجلین این قامن ایور رجاله اینه قامه یعنی کدام یک از اون دوتا مردا چیه؟ ایستار الان میگید ایور اضافه شده برای رجاله این ایور مفتدا قامه فیل و جمعه چیه؟, جمعه چیه؟ حالا اینجا مفتدا شده ممکنه؟ در جای دیگه چی بشه؟ مجرور بشه به حضور و ازل موعود گفت به ایه ذم برن خب الان به ایه ذم به دلیل مجرور شده تو مورا و مستی چرا ممکن در جای دیگه به یه شکل دیگه بشه مثل ایش سیا علمون لذینا زلامون سیا علمون لذینا زلامون عیا من قلابن یان قلابون من قلاب مستر میمیر. یعنی عیا ای انقلابن. اینجا ایویس تفمیه از مزاحن لایف خودش کسب مافولو مطلق کرده. حالا عیا من قلابن مافولو مطلق یان قلابون. هر نقش اعرابی نقش اعرابی ایو ممکنه مفهول مطلق باشه از مضافنه لعیش با هم مطلق باشه ممکنه مفهول بفاشه ممکنه مجلور در حرف جر باشه باید نقشش رو تو جمله در مذار ایو رجاله اینه خواه تا حالا چند تا ایو شد؟ دوتا دو. قسم سفرون و دالتاً علا معنه کمال ایوی که دلالت میکنه بر معنای کمال حالا اگه قبلش نکره باشه درست میشه ایوی وصفیه و اگر قبلش معرفه باشه میشه ایوی چی؟ حالیه و همیشه هم اضافه میشه به نکره همیشه اضافه میشه چی؟ به نکره مثلا میگم مرر تو به رجاله اقت کنیم مرر تو به رجاله ایه رجاله ایه صفت رجاله افر مرور کردم به مردی چه مردی؟ یعنی عظیم، حضور کامل تاموجی یعنی کامل در مردانگی بود یعنی ای رجولن رو میتونید شما بعدش جاش بذارید کاملن پر رجولیه یعنی کامل و کامل بود در رجول. حالا ایوی وصفیه است صفت رجول میگه مترتب و واهل پر رجولن جار و مجرور متعلقه به مرتو ای رجولن مضاف مضاف الیه صفت رجله چرا مجبور اگر به جای رجل ما گفته بودیم رجل اول ذی مرر تو به بعد دیگه نمیتونستیم هی رجل رو صفتش بریم چون هی رجل نکره همیشه هم به نکره اضافه میشه یه که صفت معرفه بشه اینجا با کارش کرد منصوب کن تا بشه حال میشه مرر تو به زید ای رجل مرر تو به زیدن. عیا رجاله مرور کردم به چه مردی بود در این در حالی که چه مردی بود حال میشه پس عیای وصفیه خصوصیتش چه شد این که عیای وصفیه اضافه میشه به نکره و این که عیای وصفیه چیه مورد و این که عیای وصفیه اگه قبلش نکره بیاد میشه چی سفر و اگه قبلش معرفه بیاد میشه چی آم آم سوالا چند تا اسم ای خوندید؟ 4 ایوی کمال دو شد. یکی ایوی بس یکی ایوی طال بود. درستو دو تا هم چی اسم شهر دو اسم اسم 4 و وصلتا لنداء زلام و یکی هم ایوی میاد وصله واقع میشه یعنی چیزی که رب ایجاد میکنه بین عدات ندا و منادایی که علف لام داره مثل یا ایوها رسول یا ایوها نبی یا ایوها لذین آمنون چون منادای ما علف لام داره با یا یه حرف ندای جا نمیشه نمیشن شفت این که دوتا عدات تحریف جا جمع دو, دو تا عددو تعریف جنب جن یا و الف هم دو تا عددو تعریف محسوب میشن این دو تا قرار هم جنب میشه وسطشون یه چیزی میاد چیکار میکنه فاصله اونی که فاصله میکنه کیه ایه بعد از ایه چی میاد های تنبیه یکی از موازیه که های تنبیه داشته میشه همینجاست و با غوس لا تنیدای زلام نه یا ایه هرجولو الان میگی یا حرف ندا ایو منادا مفرد معرفه مبنی بر ها حرف تنبی ارجولو مرفوع صفتی کی اینو و اینجا صفت با اون که مفرده حتما باید تابع چی بیاد لفظش بیاد و معرفه بیاد و نمیشه تابع معن داد یا ایو هر رجول ده نمیشه به دللی به دلیل اینکه که میخوایم بفهمونیم که این رجل منادای حقیقی است. چون میخوایم منادای حقیقی بودنش رو بفهمونیم رجل رو به رقب کنیم و تا لفظ ایوم و تا به, و تا به این چند تا شد تا تا ایوم اما ایوشششون و موصولتا و ایوشششون موسولتن میگه ولا یو عرب یا عربی یعنی معرب نمی شود خب ایوی چه جوره؟ از نظر ارابی ایوی محصوله باید شباعت افتقاری داره بشه مبنی چرا نشد مبنی؟ به دلیل اینکه از اسماع داره ما اضافه باشه باید افتغالیش محرفه. اما ایوی وصفیه و کمانیه محرب اصلا دلیل بناشون ما نداریم ایوی ندا هم وسته ندایه که محبی بر چنان چون چنانچون منادای مفرده مرده من. نمونه ایو محصوله ایو محصوله در یه حالت محبی نیست در حالت محصوله و ولا یو عرب و من المحصولات غیرها سواها و معرب نمیشه از محصولات سواها یعنی غیروها غیر از این ایو هیچ موصول دیگری ما نداریم که چی باشه؟ محرق الان مثال میزنه میگاه کنید نه با اکرم فیل و فایل این اکرم اکرم اینجا این چیه؟ مورده به درکه چی؟ از اضافه قد شده تنبید اومده و سدر سلش هم هم اینجا مورده حالا اکرم ایه هم. هو و اکرم اکر. اکرم اکرم ایه هم هوه اکرمک این هم با چیه؟ مورده که هم اضافه شده هم صدر سلش منذکوره اکرم ایه هم هوه اکرمک هوه محتده اکرمک هوه صدر سلش, سلش سبمیش اکرم ایان هوه اکرم ایان هو اینجا مضافه نه هست شده اومده ولی سر به سله نشده بازم میشه چی؟ فقط یک سر میمونه جون چیه؟ اکرم ایوهم مقنی برسند اکرم ایوهم چی چی؟ اکرم اکر. اکرم, هم. اکرم, هم. اکرم اکر. جو که بابای که سر شده ولی اضافه می‌خواید اینجوری اضافه مارزه نکرده خب این علتش دیگه حرف اینجا جاش دید. این میگن دوبله شده افتقارش به هم به اون زمین داخلش یک بحث پیچیده ای داره جاش اینجا نیست فقط اینجا باید یاد بگیریم ان شاء که در اول کتاب جاش اینجا نیست البته آیه این رو قبول نمیکنه یه مورد است که تو رو مطلق و دیگران هم تو یه حدی نظر اخلاص داره عقلی میفته خب حالا بگذاریم سم لننزهن من کل شیعت ایه هم عشد با در که من کل شیعت ایه هم اشدو ایه يعني یعنی بوده ایه هم و اشدو چون اضافه شده و تدریسه محذوبه مبنی بر ایه هم متعلق هم یعنی از جهت سرکشیم سم ملنن زنن سپس ما در روز قیامت میکنیم از هر دسته و گروهی ایه هم ها و عشق هر کدومشون که شدید تر بوده نسبت به خدایی تا حالا از هر کدوم گردن کلافتر بودن بیشتر باشون برخورد بودیم خب این هم مال ایه پس یاد گرفتیم ایه به طور کل با این حفظ کنیم عایون 6 قسمه ا و در هر شش قسمش چیه مربه الا در یک قسم که موصول باشه در اون یک دونه قسم در یک صورتش از محصولات 4 صورتی در یک صورتش میشه چی مبنی اونم موقعه که اضافه بشه وصد اللاش محسوب بشه مبنی بر چی میشه مبنی بر زمن میشه این کله مبنی خوب این بحثه کنیم بل حرف و عطفه. بَل حرف چیه؟ عطف. دو صورت عاطفه است. و توفید و بعدل اثباته صرف بل حکم ان المعطوف علی ادر المعطوف. بل ممکنه در دو نوع کلام بیاد. یکی کلام مثبت، یکی کلام چی؟ منفی. الان مثلا بگیم قام زیدن بل امرو قام زیدن بل امرو. این یعنی کلام چیه؟ مصبته اما جمله خبری است میگیم وزرب، اذرب زیدن بل امرو این هم کلام مصبته اما جمله جمعه چیه؟ اذرب شاییه زیدن بل امرو حالا ببینیم بعد تو کلام مثبت مثل این دو جا که یکی امر شد و یکی چی شد؟ یکی خبر شد در این دو جا چه میکنه؟ میگه بر حرف عدیز توفی تو افاده میده بعد الاثبات بعد از اثبات نه نه صرف یعنی انتقال انتقال حکم رو حکم یعنی تو مثال اول میشه چی قیام تو مثال دوم میشه چی زدن امر به زدن انتقال میده حکم رو از معتوفان علی چون واقعا زید فایل قامه است تو مثال دومم هم زیدن مفعول ازره به انتقال میده حکم رو از معتوفان علی به سوی معطوف. <تصفيق> یعنی در مثال اول کی داده زید یا هم انتقال قام قامه رو از زید بکی به هم یعنی امری استاده باقا این همون بدل غلط یه که خوندیم دیگه مگه نخوندیم که بدل غلط با بل میشه فسیم ها این همونه دیگه یعنی بخواسته بگه امر اومد امریستاد ولی گفته چی؟ قامزه ایدون بعد با بل شارش کرده بوده ببخشید اه. خب موقع زید چی میشه؟ میشه مسکوت یعنی زید در موردش تو جمله حرف میزده نشونه درسته در ظاهر حکم ما اسناد بدیم به کی؟ به زید. ولی زهد اینجا هیچ کار ند. چرا چون حکم رو بل برمی داره از روی زهد می‌بره تعبیر. می تو مثال دوپا ما مأمور به زدن کی هستیم؟ امر هستیم. زهد سبقه شده همینطوری اومده به زبان ما. یعنی تو وقت بدل غلط بودی. که بدل غلط لا یقامن پسی گفتیم یعنی چی؟ یعنی پسی غلط نمی‌کنه گفتیم چرا؟ فارسی غلط می‌کنه ما ای غلط کرد با چی میگه؟ گفتیم خب ذرب به و رو از معطوف و نعلی به معطوف این مال کلام مثبت اما اگه بعد از نهی یا نفی نه وارد شد اینجا چکار میکنید درست شد مثلا ما گفتیم که ما ضربا ما ضربا حالا ما قاما بگیم بهتر دیگه مثل همون مثال اول ما قام زیدون بله امرون ماقام زیدن بل امدر این یکی اونم هم اون یکیش هم بگیم چی لا تذرب زیدن بلکی امدر شد کلام منفی و منحی خب اینجا چی کار میکنه و بعدن نهی و نه تقریر و رو حکم اوله تقریر یعنی چی؟ تصویر حکم اولی رو تثبیت میکنه یعنی توی این مثالی که ما داریم کی نعیست داده زید کیا نباید زد زید راشو تقریر حکم اول سر جای خودش تسبیت میکنه حکم اول رو حکم اول و اثباتو رو زده و برای زدش چی رو ثابت میکنه و برای سانی چی رو ثابت میکنه ضدش. یعنی میشه زید نیستاد اما امر چی؟ نیستاد در دوپرانی نباید زیدو بزنی ولی اونورش چی؟ عمرو باید بزنی تقریر حکم رو در خصوص بل اول میکنه و اثبات رو برای ثانی ایگه نداره این چی؟ یک نظر در مورد بلی که تو کلام چی واقع میشه؟ منفی یا منفی نظر دوبام نویین اینه او نقل و حکمی الی اندبازه بعضی گفتن در نفیم مثل اثباته نقل یا حکم رو برمیداره میبره روی دومی و اولی میشه مزکوتون نقل میده حکم رو از کی؟ از اولی نقل حکمهی یعنی حکم اول الی به سوی ثانی اند بحث میشه بعضی از نظر یعنی اون وقت مثال اول ما ماقام زید و بر امرون میشه منارش چی یعنی امر نیست دور زید چی نمیدونیم مثال دوم لا تسلب زیدن بل امرن یعنی چی یعنی امر رو نذان حالا زیدشو بهش بکنم هیچ هیچ نعم مثل صورت اثباتش میشه حکم میبره میده به دومی و اولی میشه در حکم چی؟ مذكور در حکم سکور آن پس در مورد اثباتش چه می‌کرد؟ حکم رو انتقال میداد و اولی میشد مذكور در مورد منفی و, منفی و منفیش چه میکرد؟ دو تا نظر بود. یکی اینکه اولی رو به نفی و نهیش باقی می گذاشت، ضدش رو برای دومی ثابت می‌کرد. یکی اینکه چی؟ برای دوپومی حکم رو می بیورد میدهد به دوپومی و اولی میشهد بسکوتان این هم در خصوص فل که خوب جمعش پاشا که اینو خوندیم چند مرده دارم پاشا تره دل استثناء پاشا برای استثناء وارد میشه حرفا جارنن در حالی که حرفه جل او فعلا جامدن یا در حالی که فعلا جامده این دیگه نمیشه چون زمین مستطر بوجوبی هم داره به عنوان حال انجامده یعنی یا مابدش مجرور است تو حرف جل هاشا زیدن یا مابدش منصوب است تو این فیل جامد هاشا زیدن مفعولش جا القوم و هاشا زیده جا القوم و هاشا زیدن فیل جامده میگه فایلش چجوره میگه اگه فیل باشه میگه فایلها مستطرون فائلش مستتر است آ ایدن مستر مسوقن می ماقبلش فاعلش مستتر است وجوباً فایلش اونجا می باشه فاعلش و به طور بر و رکی برمیگرده یادتون تا مرجعش رو مشخص کردین جی رو یکی مصدر یکی اسم فایلی که ازش فهمیده میشه و یکم بعضی مستثنی میشه بعد جمله آشاز زیدن چی میشه؟ حال میشه دوست پیش که اووا و با الها مستطران آائن در حالی که عرد میکنه اعلامستترین مسوق سااق یا یعنی ساخت سیغ سازی شده مسوق مثل مغول مست میشه اعلامترین مسوق به ما قبل مسری که ساخته شده اچی از ماقبه مثلا در جا ان القوم و هاشا زیدن یعنی چی؟ هاشا مجید یا هم که از فرم یا اسم فائل، الا مستر الا اسم فاهل من ما قبل ها مثل چی؟ هاشا زیدن یعنی هاشا الجا منهم یا بعض مفهوم زمنن یا بعضی که مفهوم میشه زمنن منغو از این مستثنا یعنی از منغو یعنی از ما قبلش منظور مستثنانه بعضی که به طور زمن یعنی از ضمن کلام فهمیده میشه چون استثنان یعنی بعض میکنه دیگه پس بنابراین جا انقومه هاشا زیدن یعنی چی؟ یعنی هاشا بعضه هم زمینش برمیگرده به بعض هم بعض که از غم برمه بشه بعض مستثال او بعض مفهوم زمنن نشه. تمام شد بعض, بعض جمعه حالون به ما قبله حال جمعه حال نسبت به آنچه که قبلش وله تنزیح. و هاشا یک معنای دیگری هم داره که برای تنزیه یعنی منسلخ جرزن قرآن هم اومده نه بود هاشا لله که هاشن با تنویل و هاشن بدون علف هم قرارت میکنه که هستش یکی هاشن هاشا هاشن لله حالا اینو چجور تحکیب کنیم یه قاشا دیگه استثنایی است قاشا الله یعنی چی یعنی خدا منزه است خدا بلند مرتبه میگه این چند ترکیب داشت کردن و هل اسمون به معنا براءتان آیا این اسم است و به معنای براءتان براءتان لله مش مقبول مطلق مثل ثغین لک رجین لک آ که مفعول مدر می جای چی میشه؟ جای فعلش. اینجا ها شند الله گفته تنزیه الله. یعنی اون از به تنزیه هم میگه بعضی تو ترکیب کردن و علیه اسم به معنا براءتم. بعد گفتن دلیل بر اینکه این, این اسمو ببین تنوین به اضافه میشه. ها شن. و می تمنیل نشون میده که یه اسم دیگه نه او فعلون یا آیا این فعل هست بعضی گفتن این فعل هاشا فعله گفتن ببین یه چیزی از آخرش میوفته میشه هاشا این که علف از آخرش میوفته بیانگره اینی که فعل معمولاً تغییر به هفته تو فعله میگیم خب معنایش چیه میگه به معنای برای تو آشال الله یعنی برئتو من مثلا فرض کنی سو لله اینه از این کار بعد من دست کشیدم به خاطر خدا برئتو لله به معنای فعل باشه. یا اسم فعل باشه اصلا هاشا هم قبول نه اسم فعل باشه به معنای اعتبار را او یا اوبر را او بر له او. حاشاللله میشه می اسفیر به معنای اعتبار او یا او او. یعنی تبری میکنند، دوری میکنند، به خاطر خدا از کنند. ها از حرف بیچار حاشاللله. اوبره و, و میگه خلافون درش اختلاف هست آیا اینه اینه اینه درش اختلاف هست قول اول جمعنای برایتن باشه از همه شون چیه؟ بیستره که معقول و مطلق باشه ولی فعل محضور ولی لانجار منش متعلق با هاشو درست؟ اما اینکه که فعل باشه به معنای برای تو یا اسم فعل باشه به معنای اتبره و اوبره او که گفته شده این مقدار توش باست قدام حتی حتی چیه حتی چند هستی داشتیم سه قسم حتی آتفه حتی استینافیه و حتی جارهتا سه تا جاره استینافیه و حتای عاطفه همه رو خوندیم تو بعد فتا خوندیم تو حتی خوندیم استیناف هم ما تو بحث ان ناسبه خوندیم که اگر ما بعدش بهیر مزاره بیاد که دلالت رو از زمان حال میکنه آ یه میشه مربوب حتی حدم شرط است میگه حتی تر دو عاطفتا حتی رسیده در حالی که عاطف. خب اگه عاطف شد چه چیزی رو به چه چیزی چیزی می کرد؟ عاطفتا به جز اقوا و از عط میکنه یک جز اقوا رو یا عط میکنه یک جزئه، از افدوتو مثال می یکی مثال می چی؟ ماتن ناسو حد تل انبیا او این کدومش بود؟ جز اقوام ماتن ناسو حد تل انبیا که آدم خیال میکنه موت اول باید به ناس بچسبه بعد باید به کی بچسبه؟ انبیا جوز اقوام یعنی مردن خب اومدنه بابن اخلاق روح نسبت به مردن و جان دادن به دست ملک الموت اسرائیل، انسان احساس میکنه اول مردم میمیرن بعد باشی که اینطور نیست هم بیا همه از دنیا رفتن ولی مردم هنوز درست ماتن ناسه هتلن. پس ببینید این حتی از نظر ذهنی مثل چی میمونه مثل شما گفتن بروید ولی از نظر خارجی مثل باق میمونی ممکنه ما قبلش دوستر شده باشه ممکنه با بعدش ممکنه هر دو تا با هم الان اینجا چیه؟ در لابرهای هم مردم و انبیا و بلکه ناس جدوتر از انبیا نیست انبیا جدوتر از ناس هم. ولی میبینید که در ذهن انسان مثل این که میگیم سمبر انبیا یا جزه از اف مثل قد ملحات جا حدتر مشا تو ها اومدن حتی پیاده ها شد آدم تو زهنش میاد که اول حاجی های سواره میان بعد پیاده تصویی که بیدیوانی ممکنه یه مقامی پیاده سوستر از سواره درست قد ملحات جا حدتر به مهلت زهنیته این به مهلت ذهنیات یعنی مع مهلت ذهنی با یک مهلت ذهنی یعنی چی یعنی همون حتی در ذهن انسان مثل چیه صورت که حسابی دوز بشه اما در خارج نه در خارج مهلتی وجود نه. به مهلت ذهنی حالا این حتا چه جوره و تخته سو به ظاهره و داخل میشه به اسم ظاهر به ذهن داخل و تختستو به ظاهر اند بعضه پیش بعضی از نهاد این مختست به اسم ظاهره و زنه دیگه داخل نشه این دا بعضه یعنی این دا اکثره از دا اکثرش مورده خود تموم شده و حرفو افتدائه تر دو آتفتن و حرف افتدائه و میاد در حالی که حرف افتدائیه یه گوش میگه حتی چی چیز یا استیناره فتت خوره جمل این حتی استینافیه داخل میشه و جمل جمله ها چرا چون مابردش باید جمله مستقل بشه دیگه مختلف دیگه علاو جمل و تر رو جار رتن و گایی اوقات هم وارد میشه جاره فتخت هست و به ظاهره اینجا دیگه مختلف به ظاهر دیگه به زمین داخل نمیشه خلافن للمبرلت برخلاف های مبرلت دیگه به زمین هم میتونه داخل. که ها دو باشه توی دایه بونیم که حتی که یفنه هبی زیاده چیه؟ شاد حتی افتداییه، حتی جارله و حتی آتفه، میگه وقت یون سب و بعدها المزاره به ان مزمرتن لابه ها میگه وقای اوقات بعد از این حتی فیر مزاره منصوب میشه به انه مقداریم. البته به شرطی که اون پیل باشه مستقبل باشه آه. بقید یون سب و بعدها المستقبل به هم مزمردن اگر گفتیم که مثلا حتی یقول لر رسولو اطلم تو حتی عد خلال جنده اطلم تو حتی عد خلل جنده درستی چرا؟ به دلیل اینکه آینده است؟ و بعدش هم ان در تقدیر بعد از حتی این قول بستریگی که به ان مازمنت لا به ها اما کوپیگی معتقدن که حتی خودش جز حروف ناسب هست انی در تقدیر خود حتی ناسب این قول کوپیگی پس نظر کوپیگی ما چند تا حتی داریم؟ چهار تا دار. یکم حتای ناصده خلافاً دلو کتیم اما اگه بعدش پیلش زمانش حال باشه بیگه حتا میشه حتای افتدادیه مثل این که میگیم قارق پل مدینه تا قارق پل المدینه تا. یعنی نزدیک به این شهر شده چون اگر فعلش زمان و حال باشه ان از عداد استقبال این دو با هم جمع نمشه. حتی از خود دو حالیت این هم باز کندیم جز حروب آفه پست الفا دو رابطه تن نمجواب جواب جمله شرطیه اگر نشه قرارش بدی فیر شرط همین دروت دو حوامل درونیم ها چه کارش کرد؟ بعد با باید مثل چی؟ مثل جمله اسمیه جمله پلویه جمله که با عدات استقال و سین و صوفه و آن لان و اینجور چیزا هست یا عدات نفیه ما و لا یا ماستی مغرونه به خرد ترد و رابطتن جواب، جوابی که الممتنه هو شرطن ممتن از قرار دادن شرط میگه مورا چنده هست میگه و رفی سختت موازه هم و اون هر شده این نوع موارد که فال لازم داریم در چند مازه در 6 که ما این شیش موازه رو خدمتتون تو نران سر هم ولی ربط ولی رفت شبه جواب یکم یه موقع هستش که جوابی واقعا نمیخواد شبه جوابی مثل چی؟ فعر محصول بعدش فعر مزاره بیاد خبرش جمله باشه اینجا میتونه فعر داخترش میبا کنید الازی یعتینی فلهوده هم اما الازی مبتدا یعتینی فعر زمیر فائل یا منصوب به نظر پاکست این جمله سله ای الازی فعر فای شبه لهو خبر مقدم در همان مبتدا مؤخر این جمله خبری کی الضی هم رابطه الان اینجا ما شرطی نداریم در واقع بین مبتدا خبر اومده فا اومده بین مبتدا و خبرم میاد به شرط اینکه مبتدا ما چیزهایی باشه که چی آ؟ چیزهایی باشه که شبه شرط باشه الان نگاه کنید الضی یعزی و در همین چی یعنی هر کسی یعنی کسی که میآید پیش من برای او در است. انگار به شکل شرط گفته. یعنی هر کسی بیاد پیش من برای او چیه؟ درحن. اینو بهش میان شبهه شدن. چرا شبهه چون ببینید یه دونه یردینی داره سرِ موصوره ولی انگار فعل شرطه. یه له درهم داره خبره انگار جزای شرق. انگار گفته ان یعتنی فله درهم به همین دلیل این فا فای جوابه جواب نیست فای جواب خب حالا این فا واجبه یا واجب نیست نه واجب نیست میتونه بگه یعتی encontra لهو vindاشا بعد که یعتینی فلهو یعنی فای فرق فای شفه جواب و فای جواب اینه فای جواب واجبه اما فای شفه جواب واجب و عاطفتا و این فا عاطفان میاد اگه عاطفه بیاد موقعیتو میفهمه دیگه اونم موقعیتشند فا توفید و تعقیب و ترتیبن پس افاده میکنه تعقیب و ترتیب رو تعقیب رو یعنی که دومی پشت اولی اومده و ترتیب رو میفهمه که رتبهش هم بعد از اون ترتیب رو میفهمه تعقیب یعنی فاصله بینشون نیست آه. ترتیب دارن یعنی دو گمی بعد از است. ترتیب نیگه به نوعی ترتیب چند نوعه؟ دو نوعه ترتیب رو میفهمونه با دو نوعهش یکی ترتیب حقیقی ترتیب حقیقی یعنی واقعا دو گمی بعد از افردیست مثل چی؟ نبا قام از زیدون فهم رون این کجاست؟ به شرط که اول زید اومده؟ بعد که اومده؟ امر اومده این ترتیبه؟ طریبه است مثلایی که میگیم جهلهو نطفتن ف علقتن ف مزقتن خب اول نطفه بعد علقه بعد مزقه بعد بیاد باشه یک انسان کامل اینا چیه؟ ترتیبه در خارج هم همه بود بدت همه اول کلاسه درستان میره بعد راه نمایی میره بعد دبیرستان میره بدتانشون روی ترتیبش درستان باقبا میره اما یه موقع هست ترتیبش در خارج نیست در خارج عکسه. مثلا حضرت لحرام موقعی که وضیعت میکنه میگه که یا علی مثلا کفن بلی دفنی بلی سل علیه بلی خب اول باید اصلا فرض کنید که قصف رو بگه بعد کفن رو بگه کفن کردیم بعد بعد, و بعد از قصف رو بگیر هم نفری بلی بعد جفننی بعد دفننی بعد صلی عليه اما چی میبینیم قاطیه چرا می‌خواد ترتیب کارا رو بگه می‌خواد بگه این پنج شیش تا بار همش باید تو شب بشه اینها رو پشت سر هم ردیف کردی که هیچ گوشیشون از قلم هر پنج شیش تاش بشه مثلا اگه مثلا فرض کنید که نهارتو بخور درس تو بخون بازی تو بکن بعد برو فلان خب ممکنه منظورمون بودیم باشه که اول چی؟ بازی کن بعد نهار تو بخور بعد کنن ترتیب این طور باشه ولی ما میخوایم 5-6 کار رو به یک نفر بگیم میخوام از قلم هم نیفته دیگه ترتیب خارجی رو مراهات نمی ترتیب در ذکر رو مراهات میکنیم یعنی در این که بتونیم ردیف همه رد مرتب رده هم ذکر کنیم چیزش از قلم نیفته مثل این مثال و ذکری و نا دا نوحون رب بهون و نا دا نوحون رب ندا کرد نوح فروردگارشو فقا ده ندا کردن همون می ده همونه حاصل جملات رو بکنه و قد یفید و ترد تو به و گایی اوقات افاده می کنه دنست